گرمی فروش حاجت رندان رواو کند، ایزد گنه ببخشد و دفع بلاو کند، ساغی به جامع عدل به دهباد تا گدا غیرت نیاورد که جهان پر بلاو کند، حقا کدین غمان برسد مجده امان گر سالکی به عهد امانت بفاو کند، گر رنج پیش آید و گر راحتی حکیم نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند در کار خانهی که ره عقل و فضل نیست فهم زیف رای فضولی چرا کند در کار خانهی که ره عقل و فضل نیست فهم ضعیف رای فزولی چرا کند متر بساز پرده که کس بی عجل نمرد وانکو نه این تران سراید خطا کند ما را که درد عشق و بلای خما کشت یا وصل دوست یا می صفی دوا کند جان رفت در سر می و حافظ به عشق سوخت ای سادمی کجاست که احیای ما کند